و السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین تاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارزین اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا النبي ورحمة و رحمت الله و بركاته السلام على الائمه الهادين المهديين السلام و علی جميع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علي علی امیر المؤمنین السلام علی الصدیق السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین السلام على علي ابن الحسين زين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبي السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى رضا، السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام علی الحسن ابن علی الزکی الاسکری، السلام علی الحجت ابن الحسن القائم. السلام علیک يا ابو عبد الله، و علی التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقی الليل و ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم <تصفيق> السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام سبرا بن الكرام فما الموت الله غنترة تعبر بكم، آن البؤس و الزرّاء، إلى الجنان الواسعة والنعيم النعيم الدائمة. فَأيُّكُم يَكرهُ أن ينتقل من سجن إلى قصر، وما هو لأداءكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وأذاب. إن أبي حدثني ان رسول الله إن الدنيا سجن المؤمن و الكافر، والموت. جسروها اولاد ایلا جنانهم و جسرها اولاد ایلا ما کذب سوالف کذبت قبل از اینکه ادامه بحثم رو با توجه به فرموده ی عبد که در این چند شب بحث میکردیم پی بگیرم در خصوص سوالاتی که رسیده اشاره یارس کنم سوالاتی که مربوط به بحثهای این شب ها نیست من اجازه می خواهم جوابش رو بگذارید برای بعد از دهه محرم شب‌های جمعه طبق معمول که پاسخ به سوالات داریم این سوالات رو اونجا ان جواب arz خواهم کرد به دو جهت هم دیگه حقیقتا سینه و حنجره بنده یاری نمیکنه به بحث‌های اضافه تر از این ایام بپردازم هم حال هوای بحث رو اجازه بدید در روال خودشون قرار بدیم این یک اما سؤالی شده است که قبلن هم چند بار این سوال مطرح شد مربوط به بحث ما میتونه باشه من اول مختصر دو سه دقیقه جواب ارز کنم اگر خواستن ما در این زمینه همینجا نوار موجود داریم که مفصل بحث شده این که بنده در این چبه ها استدلال کردم در اثر صبر و شکیبایی و تحمل و پیروزی در امتحانات مقامات عالیاتی حاصل می شود امامان و انبیا در اثر تحمل و صبر به این مقامات رسیدن برخی چون حضرت عیسی که در گهوار سخن گفتند یا امام جواد که در سن کودکی به امامت رسیدند چطور من مفصل اینا رو قبلا بحث کردم فقط اشاره میکنم ببینید ما در زیارتی که یک شنبه ها برای حضرت زهرا سلام الله علیها میخوانیم میگوییم السلام علیک یا ممتحنته امتحنک الله الی که قبل ان خلقک و وجدک لم امتحنک صابره سلام بر تو بانویی که امتحان شدی به وسیله اون کسی که ترا آفرید قبل از اونی که بیافری امتحان کرد و ترا نسبت به اون امتحان و وجد که لمم تحنکه صابره و دید که نسبت به آن امتحان صابری ثابت قدمی اجمالاً می کنم به نوار مراجعه کنید یا انشاءالله بعد از این ایام شبه های جمعه باز برایتون ارز خواهم کرد مگر ظرف امتحان الهی و ابتلاعات پروردگار فقط ظرف این دنیا است. عوالم مختلفی داریم یکی از اون عوالم این عالمه که حالا اگر انشالله فرصت شد این رو انشالله بحث خواهیم کرد این اجماعن اجازه بدید کافی باشه خب بحث چی بود؟ صبح آشورا امام حسین علیه السلام به اون برجستگان و لایقهایی که لیاقت اصحاب اون حضرت رو دارند، به اون کیفیت که هم بن کرامند و هم کرام طبق بحثایی که داشتیم میفرمایند صبرن صبور باشید داشته باشید این صبر چیه این شکیبایی و تحمل چه ارزشی دارد که حتی اون دسته از افراد برجسته برای رسیدن به مراحل بالاتر باز باید از عنوان و وسیله صبر استفاده کنند علاوه بر اونچه که این چند شب عرض کردم یه مقدمه کوتاهی بگم چند آیه و روایت در این رابطه یه مقداری مسئله رو مشخص تر کنه گفتیم حبس نه، صبر حبس نفس است یعنی نگهداری نفس در دو مورد مخصوصا که هر یک از این دو مورد موارد متعددی رو در زیر مجموعه خودش میگیره یک نسبت به امکانات و سرمایههایی که خدا به انسان میدهد در برابر اون امکانات و سرمایه‌ها نوعی حبس نفس و صبر کردن لازم است که برخی اینجا می‌لغزند مثلا خدا به یکی آبرو میده پول میده ثروت میده علم میده قدرت میده شهرت میده شرایطی پیش میاد که این امکانات در زندگی براش فراهم میشه صبر برای این فرد چیست میتواند خودش را کنترل کند آنکه که به اقتضای این امکانات مسئولیت پیدا کرده حالا که امکاناتش بیشتر شده وظیفه‌ش هم بالاتر رفته می تواند جلو هوای نفسش را بگیرد که وظیفه بیشترش را عملی کند یا نه همین امروز به من زنگ زده شد قدرت تحمل اینکه صبر کنم دیر تر بگم ندارم بی بیصبری من در این قضیه. مثلا کسی که امکانات دارد جشن ازدواجی برای فرزندش در این تهران بگیرد بیست و شش یا نمیدونم چهل وشش من شک کردم نو غذا در این جشن ازدواج بچیند بیست و میلیون تومان خرج یک شب عروسی آوازدش بشه آیا در شرائطی که مردم نیازها دارن و با این پول کارها می شود در راه خدا کرد این انسان خمسش رو هم داده از پول مخمس از راه حرام هم فرض کنیم پول در نیاورده ولی صبری که در این جامت را می شود چیه؟ این استقامت را دارد که خود را کنترل کند جلو تمایلات را بگیرد به کیفیتی که پروردگار میپسندد عمل کند یا نه این یک بحثه من اجازه بدید در ابتدای بحث از دعای مکارم الاخلاق که میدونید از دعاهای معروفی است که از امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه نقل شده است دعای شماره هیفدهم از شماره دعاهای صحیفه است دعای مکار الاخلاق جداگانههم چاپ شده ها برو نوشته شده از ادعیه خیلی خیلی پرمحتوایی که خیلی تأکید شده که این دعا را بخوانید و به مزامینش توجه کنید من قسمتی از این دعا رو در این رابطه کمک میگیرم داره امام سجاد علیه السلام در قالب دعا به خدا عرض میکند و لا ترفعنی فه ناس درجتن الا حتتنی اند نفسی مثلها خدایا منو در میان مردم بالا نبر مگر اینکه یعنی اگه بناس در میان جمع بالا برم رفعت پیدا کنم عنوان و شخصیت بیابم اینو نمیخوام الا مگر اینکه عند نفسی پیش خودم حتت تنی خودمو کوچک ببینم یعنی چی؟ یعنی اگر چهار نفر به من بهبه و چهچه گفتن تعریفمو کردن یه مقدار در نظر مردم در شعون مختلفی بالا قرار گرفتم. این نفس سرکش طغی باقی کاری نکند که دور بردارم عجب و تکبر و غرور منو وادار به یه کارایی بکنه یعنی توان و صبر لازم را نسبت به این مقام ندارم این درخواست مقام صبر نسبت به این درجه ای که در جامعه باید پیدا کنم من ولا تهدث لی عزا ظاهرا الا اهدثت لی ذلة باطنة عند نفسی بغدرها خدایا نمیخوام منو در جامعه عزیز کنی از نظر ظاهر در میان مردم دارای عزت و سربلندی بشم مگر یعنی نه اینکه اگر عزت داده شد بده اگر رفعت و درجه داده شد بده خوب است به این شرط به چه شرطی الا مگر اینکه الا احدست تلی مگر اینکه حادث کنی برای من ایجاد کنی این درجه رو به من بدی زلتن باطنتن عند نفسی به قدرها در نفس خودم پیش خودم زلت، هقارت، کوچکی را به اندازه همون عزتی که تو برای من در ظاهر قرار دادی من برای خودم در باطن این رو داشته باشم یعنی وقتی با تو خلوت میکنم بفهمم من کیم یک بنده عاجز نیازمندی که آنی نظر عنایت تو برداری من هیچم یعنی اگه بناس عزت رفعت درجه مقام اینا در این شؤون حالا شعون دیگش هم عرض میکنم اگه بناس اینا رو به من بدی من نفسم رو میتوانم توانم به گونه ای قرار بدم که حبس نفس کند در مقابل اونها نالقزت و از راه به در نرود اگر برود که نمیارزد پس نمیخوام یعنی اگر صبر لازم نسبت به این امر نداشته باشم این امر رو نداشته باشم بهتره ارتباط صبر و دارایی رو دقت کنی بعد سریع امام علیه السلام در چند سطر بعد تو همین دعای مکاریم این مطلب رو چگونه بیان میکنن و امرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتك فا كان کان عمری فقط لشیطانه الیک قبل غبل انیس به غمقتو که خدایا این عمری که به من میدی اگر میخوای به من طول عمر بدی بقای زندگی بدی به ای باشد که عمرم در مسیر اطاعت تو مطرف شود و هرگاه بناس عمرم مرتع شیطان بشه یعنی شیطان خوب بیاد تو این جولان بده و بچره و ببره ای که از ادامه حیات من هست برای شیطانه اگر این میخواد بشه عمرم را قطع کن دقت بفرمایید بفرموید دعای مکارم سند دعای مکارمال اخلاق خیلی قوییات چون صحیفه هست صحیفه سجادیه سندش ابتداش نهدو شده از منابع متقن و قابل توجه ما ایانه که روش بحث ها هست دعای شماره هیفده از صحیفه سجادیه دعای مکار الاخلاق از کردم مفصل هم روش شهر نوشتند و بحث کردند. چرا امام سجاد علیه السلام در غالب دعا به ما میآموزد خدایا؟ اگر بناس عمر من مرتع شیطان بشه قطعش کن قبل از اون که بدبختی ها و گرفتاری های این عمر به عنوان عذاب از طرف تو به من برسه عمرم و بگیر که این عمر باعث اون گرفتاری ها نشه خب اینجا نقش صبر رو مشخص کنید در دارایی ها عمر دارایی است عزت دارایی است رفعت اجتماعی دارایی است امکانات زندگی دارایی است یک زمان صبر لازم در ارتباط با این امکانات رو داریم، یک زمان صبر لازم در رابطه با این امکانات رو نداریم. اگر داشته باشیم خوب است بهره ببرید برید جلو خودش زمینه تعالی می شود اما اگر نداشته باشیم چه مشکلاتی درست میکنه حالا اجازه بدید من از قرآن در این رابطه استفاده هایی بکنم نمیدونم حالا امشب وقت باز چقدر در رابطه با این بحث به ما اجازه میده سوره آل امران آیه 180 من همون گونه که قبلا هم عرض کردم درخواستم از شما عزیزان اینه میدونم که با این دقت و تعمق به بحث ها توجه دارید نوعا این آیاتی که ارزم کنم خودتون قبل و بعدش رو هم ببینید. چون حتی قبل و بعدش بحث هایی داره در ارتباط با مطلبه ما اگر بخوایم با اون صورت بحث کنیم دو ماه محرم و سفرم هم وقت کم میاد میخوایم در این چند شد جمبندی کنیم انشاءالله آیه 180 آل امران آیه 178 دیشب خوندم از همون آل امران آیهی بود که حضرت زینب سلام الله ها به رخ یزید کشید که اگر به تو مهلت داده قدرت داده حکومت داده مثل دعای مکارم که خوندیم عمرت مرتع شیطان شده شیطان داره جولان میده داره بدبختی برات درست میکنه ادامه همون بحث میاد در آیه 180 اینجا دقت بپرمید ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خوب دقت فرمید یک آتاهم الله من فضله این اول خداوند از فضلش به بعضی ها چیزایی رو داده است حالا این علم پول قدرت هرچی هست ولا يحسبن الذين يبخلون حساب نکنید گمان نکنید اونایی که بخل میورزن بخل نقطه مقابل جوده کرمه جود و کرم که دیشب اجمالی از صفت کرامت رو اشاره کردم که هنوز مونده روش کار داریم کرامت آثار آثاربخشییه که این آهیا کرم و کریم بودن اینها آثار به دیگران بخل خودداری کردن از اینکه به دیگران انسان چیزی انایت داشته باشه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله گمان نکنن آنانی که خداوند از فضلش به اونها چیزایی داده و اونها میورزن هو خیرن لهم این خیره براشون یعنی الان فرض کنید در جنبه مالی خدا پول بهش داده میورزه در اینکه این پول را چون صبر در پولداری چیه صبر در پولداری حبس نفس در تمایل به این مادیات به گونه ای که وقتی لازم می شود در راه خدا به جهت این امکانات انجام وظیفه کنه انجام وظیفه کنه البته با اون شرایطی که خود قرآن میگه گه نه اونچنانی که دستت بسته بشه نه اونچنانی هم که بخل حساب بشه معیار ادالت جای خودش مفت. حالا این صبر رو نداره بخل میورزه. بخل میورزه چرا به گمان اینکه با نگهداریش برای خودش خیری ذخیره کند سریع داره میپرماد ولا یحسبن نه اینجوری گمان نکنیم خداست قبول داریم اینا رو و قبول داریم میخوایم درس بگیریم تو ایام آشورا اگر قرآن را قبول داریم حالا من مثال مال زدم فرق نمیکنه آبرو داری آقا جون میتونی بخل نسبت به خرج آبرو نورزی کریم باشی در دادن آبرو مثل کرامتی که اصحاب ابی عبدالله داشتن در دادن تمام وجودشون دیگه جان لازم بشه جان بدن آبرو لازم بشه آبرو بدن پول لازم بشه پول بدن اونایی که خیال میکنن با بخل ورزیدن نسبت به اونچه که این آتاه و لامن فضل مهم ما این عبارت رو دقت کنید اون چرا که خدا از فضلش به اینها انایت کرده بخل می‌ورزند از بخشیدنش به دیگران ولا یحسبن هو خیرن خیال نکنن این براشون خیره بل هو شر لهم بلکه این شره لذا همینجا یه لحظه دقت بفرمایید اگر ما دعا کنیم خدایا به ما امکانات بده همین مقدار دعا کافی نیست امام سجاد تو دعای مکارم اخلاق چی یاد داد الان خوندم براتون دیگه سید العابدین و ساجدینه سب که دعا رو داره امام سجاد به ما یاد میده خدایا اگر میخوای به من عزت بدی رفعت بدی عمر طولانی بدی ولی در مسیر تو نباشه نه نه نمیخوام ببرش اگه عمر در مسیر تو نیست نمیخوام دعای مکارم بود عزت میگی قدرتش رو بدی که پیش خودم حساب کنم تو چه کاری خدا داده بخواد بگیره میگیره پس اینجا اگر کسانی که از فضل الهی به اونها انایتی شده بخل می در راستای الهی استفاده کنند. یعنی صبر به این معنی صبر در داراییها را ندارن اینا خیال می‌کنند خیرا لهم بل و شر لهم همین امکانات برای اونها عذاب شر سی و ما بخلو به یوم القیامه همین آتوغ عذابی می شود قیامت بگردن یعنی این اونگونه که باید از این امکانات قدرت صبر لازم در مسیر خدا را داشته باشد نداره و لذا ضرر میکنه حالا عکسش رو همینجا در این زمینه هم آیاتی هست که باید بخونم ولی یه لحظه اجازه بدید یه آیه عکس این براتون بخونم روش دقت کنید سوره مؤمنون آیه 76 ولقد اخذناهم بالعذاب سمس تکانو لرب بهم و ما این آیه رو با یه آیه دیگه باید کنار هم بگذاریم تا معناش یه مقداری در این رابطه دقت کنی اون وقت بلاها گاهی بیاد به معنی ابتلا و آزمایش در این ابتلا و آزمایش به تذر رو بیفتن در مقابل اون امور برای بالا بردن صبر چه ارزشی داره و لقد اخذنا به همانا اینا رو گرفتیم و عذاب, عذاب براشون مقرر کردیم چرا؟ سمستکانول رب بهم و ما ی برای اینکه که اینا برای خداوند خضوع قلبی و تذرع نداشتن استکانت رو در لغت میگن خضوع قلبی تذرع رو میگن خضوع آشکار لذا تذرع رو در زبان عرب به لغت مراجعه کنید گردن کج دست به سوی بالا گرفته حالت ذلت و هقارت و ضعف در مقابل خدا میشه تذرع لذا اگر کسی هم بیاد پیش شما مثلا احيانن بخواد با یه حالت خاصی اون ز... هقارت شو به رخ بکشه تذرع در مقابل وندگانه که این پسندیده نیست تذرع در مقابل خدا پس اینجا میفرماید اینها چون تذرع نداشتند در پیشگاه خدا انابه و نالب و سوز و گداز و عرض ادب نداشتند استکانت نداشتند اونی که در دلشون اون مرحله در ضلت که امام سجاد تو دعای مکارم فرمود در درون خودم ذلت بیابم اینو نداشتند. چون این رو نداشتند ما اینها رو عذاب کردیم حالا اینو داشته باشی سوره اعراف آیه 94 در این زمینه قوغاس اگر اینها رو شما در کنار هم قرار بدید و دقت بیشتری به بی این مضمون بفرمایید سوره احراف آیه نود و و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبعثای و ذرا لعلهم یذ و ما فی غریت من نبیگن ما هیچ پیزنبری نفرستادیم تو هیچ منطقه و قومی الا اخذ اهلها اهل و مگر اینکه در میان مردمانشون و امتشون یه سختی ها یک ها یه امتحانات یک مشکلات برایشون پیش آوردیم چرا لعلهم برای این که ایناب به تذرو بیفتند؟ دقت بفرمایید این آیه چی گفت مؤمنون آیه 76 ولقد اخذناهم بالعذاب اونا رو به عذاب گرفتیم چرا فمس تکانوا لربهم ومای تزرعون چون استکانت نداشتن خضوع قلبی نداشتن به درگاه خدایی نداشتن تو پرانتز اینو عرض کنم حالا اگر یک کسی این سوالو بکنه خب خود تزرع خود استکانت نوعی عذاب هست یا نه اون وقت اگه این کارو نکنم خدا عذاب میکنه خب خود من که تضرع دارم و استکانت دارم ها این باید توجه بشه تذر و استکانت در بعصا و ذرا توجه به پروردگار است برای قرب حق چون خدا میخواد ما رو رشد بده میخواد با او ارتباط داشته باشیم تا رشد پیدا کنیم گاهی غرق نعمت ها که میشویم در اثر اون دارایی ها مضرور میشویم تزرع به درگاه خدایی رو فراموش میکنیم خدا اونی رو که دوست نداره رها میکنه استدراج که دیشب آیه خوندم بازم میخونم میگه حالا که اینجوری شدی نمیخوایم تو راه من بیای ولت میکنم برو هرچی میخوای امکانات برایت فراهم میکنم خیال نکنیم مهلت‌هایی که برات دادم برای رشد شماست برای بیچارگی بیشتر شماست برو ادامه بده اما اگر سیم قطع نشده باشه، یه ارتباط مایی با پروردگار باقی مونده باشه. برای اینکه لطف الهی شامل حالش بشه اینو میندازه تو ابتلاعات حالا که تو ابتلاع انداخ یکی از آثار ابتلاع اینه که فریاد بزنه الهی و ربی پروردگارا خدایا به کمک من بیا به سوی در خانه تو میام مخصوصا اونایی رو که خدا میبینه لیاقت دارن استعدادشو دارن و میخوان بالا بیان میخوان این میخوانو دقت بفرمایید میخوان بالا بیان آروم آروم امتحانات حادتر میکنه حادتر میکنه حادتر میکنه،, میکنه،, میکنه به اون جایی میرساند که با تمام وجودش لمس کند خدایا الهی و ربی رب من لی غیرو. خیلی مهم ما الهی و ربی رب من لی غیرو. تا میزانی که امید داره به اطرافیان به دوستان به بستگان به پول به قدرت خدا میگه تو رو با اونا برگذار میکنم برو جلو برو جلو یه وقت لیاقت تربیت نداره میگه باشه اینا بهش کمک میکنن این دلش به هم خوش باشه محبوبش هم ها بشه نقطه امیدش همین ها بشه با همین میره جلو ولی نه زیلی تربیت داره زمینه رو نشون میده خدا کاری میکنه از همه این آغت امید کنه از همه این به شکلهای مختلف گاهی همین رو کنن گاهی از همین ها بخوره بعد تو اون به زنگاه که افتاد اونجاست که از اعماق جا این همه دعای و کمیل و ما شبهای جمعه می کنیم تو این نکتهش توجه کنیم الهی و ربی من لیغه ای خدایا خدای غیر از تو من کیو دارم هرچی از تو نیست فقط توی تویی که به انایت می و دست ما رو می گیری. لذا آیه چی می گاهی خداوند بندگانش را در این امتحانات و مشکلات قرار میده تا به تذرع بیفتند این تذرع مسیر رشد اونها را فراهم کند پس یک در امکاناتی که به ما داده می شود نسبت به این امکانات توان لازم رو در صبر داریم که به جا به کار ببریم، حداقل لا این من که خیلی رو دیدم، خدایا تو میدونی صادقانه میگم، حداقل حداقل یه مقدار غرورش نسبت به قبل بیشتر میشه. حداقل لا حداقل پرتوکوییش از احترام دیگران بیشتر میشه. حد اینا حداقل بشه. آقا شرایط اقتصادیش کمی عوض شو. عنوان اجتماعیش کمی عوض شد حالا آدم وقتی نگاه میکنه با یک جسدی با یک غروری با یک برخوردی این این مقدار تحمل نداشته طبق بیان امام سجاد در دعای مکارم اخلاق ای کاش اینا به من نمیدادی، چون اینایی که به من دادی میخواد منو اینجور ضعیف کنه از اون سیر کمالی هم باز بیفتم پس نباشه بهتره لذا در سوره تقابون آیه ببخشید. در سوره منافقین آیه 9 دقت بفرمایید یا ای الذین آمنو خیلی این آیه در عجیبی داره یا ای الذین آمنو لا تحکم اموالکم ولا اولادکم ولا اولادکم ان ذکر الله و من يفعل ذلک فاولاک هم الخاسرون آیه را دقت کنید یا یا لذین آمنو ایمان آوردید ایمان برای چیه؟ برای بالا رفتن بالا رفتن درجات عالیه رستگاری در مسیر خدا رو پیدا کردن حالا که بحث ایمان براتون مطرحه میخواید بیاد بالا لا تلحکم حکم شما رو سرگردون نکنه به معنا کنم شما رو نفریبه. گولتون نزنه اموالکم ولا اولادکم گاهی مال گاهی اولاد سه امتحان حادی حدی کزت ابراهیم از خلیل الرحمن پشت سر گذاشت در این امتحانات بعد به رسید به مقام امامت رسید. و از طلا ابراهیم راب به او به کلماتن فعتم می‌کند. یکی امتحان جان بود که تو آتش شنده تکن نخورد. یکی امتحان اولاد بود پسر تو قربانی کن چاش. امتحان ابراهیم راجبه پسرش قربانی بود. امتحان عزت نوح راجع به پسرش. ان شالا آیاتشو می‌خونم بعد. اون هم به چه صورت بود امتحان مال اصفندات رو باید بدید چار همه رو داد رو که میدونید لا طلحکم اموالکم ولا اولادکم مالاتون سروتتون بچهاتون نکنه شما رو جوری سرگردان کنه ان ذکر الله از یاد خدا غافل بشید یعنی پس میتونه اموال و دلبستگی به تعلقات خانوادگی و فرزند انسان را که صبر ندارد استقامت جا در مسیرش داشته باشه وادار کند که از ذکر خدا غافل بشه و من یفعل ذالک حالا کسی که این کار کرد ف اولیک هم الخاصرون خسرانو توجه دارید دیگه از ضرر معناش امیدتره یعنی بر شکستگی اصل سرمایه شما از دست داد یعنی این سرمایه عظیم انسانی رو که این انسان داشت میخواست در مسیر الهی حرکت کنه بالا بره این سرمایه رو ازش گرفتن حالا اونی که این سرمایه رو میخواد به کار ببره تا سود ببره پس یک در مواردی که امکانات میدن توانمندی بد میدن انسان اون انسانی است که توجه داشته باشه امتحان من در دارایی شروع شد قبل از این امکانات من فراوان تو عمر کوتاهم دیدم فراوان افرادی که چقدر مرتب منظم اهل جلسات توازو فروتنی اظهار دوستی تاک زد و کارش گرفت حالا دیگه دست تلفنم میکنی وقتی جواب دادن تلفن شمارم دیگه نداره چه خبره؟ چه شده یک کمی پولم رفته بالا یک کمه عنوان اجتماعیم رفته بالا اومد پیش پیغمبر اسلام یا رسول الله خیلی مرتب پشتر پیغمبر تو نماز جماعت حاضر بود و نماز میخوند و عبادت و فلان و یا رسول الله وضع مالین بده یک کمک یه دعایی بفرماید حضرت دو درهمی بشتدن فرمود این دو دودر... درهم و ببر کاسبی شروع کنه انشالله خدا برکت شم بد میده رفت و خرما خرید توی طبقی و دست فروشی خرما فروشی کرد کم کم کارش گرفت و یه دکهی گرفت کارش بیشتر شد و یه مغازهی گرفت کم کم کارش به جایی رسید شد صادرات و خرما و واردات مثلا نقطه مقابلش و یک تجارت عمدهی در مدینه را انداخت همینجور که کم کم کارش بالا می رفت نماز جماعت هم یک در میون می اومد کم کم به جای رسیدگی مدتی تو مصرف پیداش نشد یه روز پیغمبر از جلو مغازش رد میشد کارمندا بیا برو شوتوره ها میخوابن پا میشن بار میزنن بار میبرن چه خبره حضرت مدتی اینجور واسته نگاه کردن طرف تا دید دوید اومد دید یا رسول الله مثلا به تعبیر من چاکر شما مخلص شما بفرماید اینجا چرا ایستادی؟ حضرت هم در چه خبرت مدتی نمیبینیم آقا دیگه خیلی سرمون شروع شده. نمیرسیم فرمودون دو درهمه رو میخوام گفت خیلی بیشتر میدم فرمود نه همه دو درهمو خودم میخوام دو درهمو حضرت گرفتن از فردا کم کم کار شروع کرد با افت, افت, افت, افت, افت رسید به اون حالت اولی این دفعه اومد تو مسجد و شروع کرد و حضرت فرمود دیدی بعضی اگه داشته باشن توفیقات ازشون گرفته میشه تو نداشتی مسجد میامدی بعضی یا نداشته باشن امتحان الهی به سوبر مختلفیه مرد خدا اون کسیست که در جمعی این مراحل در اونجایی خدا امکانات یعنی باید تمرین کردیگه باید کار کرد به اینجا درسیم اما حتی اگر بگیم خدایا به من نده چون رو ندارم بس من ارزش ندارم نه اینم امتیاز نیست خدایا به من بده چون اگه ندی من رو ندارم اینم بده اون زمان انسان رشد یافتهی صبر داشته بوشی صبر هم معناش اینه صبران بن نلکرام اگه مطرح همیشه معناش اینه در شرایطی قرار گرفتی خدا به داد تکون نخوری عوض نشی همون مسیری که خدا برات معین کرده مسیر رو بگیری اگر طبق روال شعر وظیفت اینه موقعی که این همه امکانات داری همون باشین. یکی از دوستان خوب ما میگفت رفتم تو سیستم درس طلبگی درس رو خونم به یه استاد خیلی خوبی برخوردم خیلی قوی و مرد خدا. پدرم منو به اون استاد معرفی کرده بود. اولی که وارد اون شهر علمی شدم، منو وارد خانه اون عالم کردن تا حجره ای بگیرن، منو به اون حجره سکنا بدم تو سه شبی مهمان این عالم معروف اون شهر مذهبی بودم. شب اول شام برای من آورد و خود پیرمرد شد. رختخواب آورد برای من، تان کرد که این اتاق شما اینجا استراحت کنید. گفتم که آقا ممنونم رختخواب نمیخواد. بودن چرا؟ گفتم من رو زمین میخوابم. نگاهی به من که گفت نکنه برای خودت یه سیستم مثلا تربیتی من در آوردی داری اگر این نکته خیلی عمیقه اگر جوری تربیت شدی رخت با تو شک مثلا 20 سانت پنبه نرم بود که روش داری میخوابی و نبود روی سنگ میخوابی برات فرق نکرد اون موقع ساخته شده ای همینطوری که من رو تو شک بخوابم، احساس میکنم نازنازی بار میام روز زمین بخوابم، خوابم روش میکنم خودی اینم یه قیده خودی اینم یه دیده تا یک سر مویی تو هستی باقیس آیین دکان خودپرستی باقیست گفتی بد پندار شکستم رستم این بود که ز پندار برستم باقیست. مرحوم احمد نراقیه با اون عظمت خیلی مرد بزرگیه وقتی معراج ساده رو نوشت که معراجش میراجش است رفت نجف علمای بزرگ نجف اومدن به دیدنش یکی از چهره معروف نجف به دیدنش نیومد تو فکر رفت چی شده که ایشون از من دیدن نکرد خودشون رفتن دیدن اون عالم چی دی نگفتن مدتی در نجف بودن بیمار شدن علما به ایادتش اومدن باز اون آقا به ایادتش نیومد ایشون بد رفت سراغ اون آقا گفت آقا من شما رو یک عالم برجسته قبول دارم عمل شما برام ملاکه من اومدم ببینم چی شده شما نه دیدن از من کردید نه بازدیدم دیدم اومدید نه ایادت. لابد من یک کاری کردم بگید خودم رو اصلاح کنم گفت معراج سادی شما رو خوندم می‌خواستم امتحان کنم اونی که نوشتی در اون سطح عملی قرار داری یا نه دیدم نه قرار داری برات مهم نبود چون اگه برات مهم بود دیدن من اومدی که باز دیدت نیومدم دیگه من علم نمیذاشتی این دفعه که من نمیجیدی اخمم میکردی نه این ملا احمد بی این قدرت یه بنده خدا دی کتاب معراج ساده شو خون دوام دوام خودش رو به نراغ رسون ببینیم این عالم ربانیستی شاگردایی و کلاسی و درسو قای حرفو جمع کن برو مثلا یک دیری صومعه ای عبادت کن کتاب تو این حرفا رو میده گفت خب حالا میخوای با هم دیگه سفری بریم تو سفر یا شما منو تربیت کنی یا من در شما اثر بگذارم برو بریم حرکت کردند رسیدند به یک محلی شب خوابیدند از اون محل حرکت کردند الله اللحمد تصرف کرد اون بنده خدا تصویحش اساس مثلا تبرزینش یه چیزی که امراش بود جا گذاش یادش را چند کیلومتر رفتند بعد از چند کیلومتر که اه چی شده بود اونجا جا منده. خب حالا مهم نیست. نه نه نه. من به اون خیلی علاقه داشتم. حتما باید برگردیم تا اونجا پیدا کنم. یک سفر ما تموم شد. من اون کلاس و اون شاگردا و اون عنوان و همه رو رها کردم با تو اومدم. تو یه تصمیمی نمیتونی بگذاری صبر اگر ما میگیم فقط این نیست که اگر مرگ یک عزیزی پیش اومد ما یه مقدار صبور باشیم. صبر فقط این نیست. که اگر همون جوری که این شبا دارم عرض میکنم در یه مشکل خاصی قرار گرفتیم قدرت ایستادگی داشته باشیم صبر یعنی ایجاد قدرت حبس نفس در جمیع شؤون زندگی اونجایی که به امکانات میدن قدرت داشته باشی فریب نخوری یک با خدا رابطت کم نشه دو با مردم رابطت کم نشه سه نسبت به وضاعف اخلاقی تغییر نکنی چهار حتی طبق بحث دعای مکارمال اخلاق که امام علیه السلام فرمودن هرچه امکانات بیشتر میشه کوچکتر بشی درختی که بارش بیشتر شاخش سرازیرتره. صبر در اینجا به این معنیه اونوره قضیهش دنیا دارون بلبلاه محکومه گرفتاری ها پیش میاد مشکلات پیش میاد ناراحتی های جسمی پیش میاد چقدر قدرت داری در مقابله این مشکلات ایستادگی کنی و توان خودت رو در این رابطه نشون بدی. حالا آیه باز هست امشاب وقت نیست. اجازه بدید از روایات هم در این زمینه دو تیکه بخونم. یک اصول کافی جلد اول اون روایت معروف باب عقل و جهل که دوستان آشنان امام کازم علیه السلام کرارن به هشام شاگرد برزیستشون می فرمودن هشام راجبه اقل راجبه اقل راجبه اقل که مفصل قضیه رو می دونید اول صفحه 18 یه چی که از این اینه یا هشام امام کازم داره به شاگردی مثل هشامش میگه. گه من ارادل دنا بلا مالن دقت کنید حدیث قوغاز من ارادل دنا بلا مالن کسی میخواد خواهد که مال داشته باشه غنی باش پول نداره ولی ثروتمنده یعنی و وراح م... القلب من الحسد یعنی دلش از حسادت ها را چون حسود خودش بیشتر از همه رنج میبره اینکه گفتن ال حسود لا یسود قبل از اینکه دیگری از بس خودش رو میخوره یه جهنم برای خودش درست میکنه وراحه القلب من الحسد میخوای دلت از این کینه و حسادت ها خالی بشه راحت بشی و سلامت فدین میخوایی در دین سلامتی دین تضمین بشه فل الله الالله عزوجل فی مسئلتهی بانی یکم ملا دقت دقیق دو تا بس یک درگاه خدا تزرع کن این یک درس امام کازم یادمون باشه ما وقت بگذاریم تو شبای قدر چند تا گفتم یک دو سه عهد بندیم کارا رو بکنیم بعضی از دوستان تماس گرفتن در این مدت گفتن ما اینا رو شروع کردیم مثلا یکیش این بود تو هم مراسمی که قرآن بالا سرمون بود گفتم عهد کنید روزی 50 آیه لا کمتر نخونید دیشب چند تا جوان گفتن ما این مدت نرسیدیم بیاین ولی این 50 تا آیه ها ترک نشده داریم میخونیم و بعضی دیگران همچنین. خب، هم چنین خب الحمدلله امشبم بیاید اینو دقت بفرمایید این درس امام کاظم علیه السلام رو تو رابطه صبری که داریم بحث می‌کنیم یک میگه تذر داشته باشید اما یه وقت بذارید در این 24 ساعت دقیقه یه رو با خدای خودتون حالت تذر رو بگیرید قایه خونده میگه ما مبتلا میکنیم تا تذر رو داشته باشن نا آثار داره امام کازم هم داره میگه اگه میخوای ثروتمند بشی بیمال قلبت راحت بشه از حسادت ها خارج بشی سلامت بیمال داشته باش. نکته دوم در این تذره از خدا بخوا عقل تو کامل کنه این نکتم چقدر مهمه که آقلانه معذرت میخوام ببخشید خرمقدسانه مذهبی نشیم مذهبی آقلانه اندیشمندانه متفکرانه امیغ نسبت به مسائل چیو که امام کازم به جناب هشام میگه هشامی که معلومه در چه سطحیه این یک روایت که تزرع در درگاه الهی برای ایجاد اون حالت استادگی که معلوم اما ادامه روایات باب صبر که هر شب یکی دو تاشو خوندم یه دونهشم امشب بخونم دیگه فرصت ما اجازه نمیده انشاءالله ادامه این بحث برداشب اینو دقت بفرمایید حدیث ششم از جلد دوم اصول کافی باب صبر از امام صادق علیه السلام و سلام عبی بسیر میگه عبی بسیر همون صحابی لایقه امام کازم امام صادق که یه شب عرض کردم نابینا بود امام فرمود میخوای بینایی تو بدم در عوضی ارزش ها ازت گرفته میشه خب نه آقا ما با همین نابینایی میسازیم، ولی اون ارزش ها رو از با نگیرید بذارید اونها باشه خب این امام این عبا بسیر میگه سمعت و عبا عبدالله امام صادق برای من ابوابصیر اینجوری گفت چی گفت انل حر حرن جمیع احواله آزاده میدونید کیه آزاده ای که امام صادق آزادش میدونه الا جمیع احواله تو هر حالی آزاده است حالا هر حال خودش مشخص میکنه نه اینکه تا یه ذره مشکل پیش میاد اونوری میشه یه ذره امکاناتش بیشتر میشه اینوری میشه اینکه ارزش نداره ان اللجرا حرن علی جميع احواله ان بث و صبر الله مشکل پیش اومد گرفتاری براش پیش اومد صبر میکنه و ان که کد علی المصائب لم تكسره اگر مصیبت ها گرفتاری ها کلافش کرد به خصوص خداوند اینو گفتم این شبا و بازم دارم میگم اگر کسی میخواد تو دستگاه خدا قر پیدا کنه خدا میچه زندش این سنت الهیه برای مثال زدم فکر نکنید که عذیت پروردگار نسبت به بنده آقا رو میخوان بذارن رو بگیرن میذارن تو کوره هی حرارت های فردای قیامت لازمه ای این ناخالسی ها رو در این دنیا جدا کردن در کوره امتحانات الهی سوختن است سوختم تا عشق را آموختم حاصل عمرم سه سخن بیش نیست خام بودم پخته شدم سوختم خیلی پرمعناز و خوب هم گفته انصافند حاصل عمرم سه سخن بیش نیست خام بودم پخته شدم سوختم ولی تا این سوختن ها نباشه پخته شدن نخواهد بود و لازمه این سوختنها اینه که گاهی به فرموده امام صادق به عبابسیر و انتداد کد علی علم مسائب لم تکثره و این اوسره و قهره و صب دله دل اس دل یسر اسرا کما کان یوسف صدیق الامین مثالم زدن اگر چه که این بنده خدا اسیر بشه یا وقتی هستی بنده خدا توی مشکلاتی گرفتار اطیر شد مقهور شد آسایشش یه تبدیل به گرفتاری ها شد کما کان یوسف صدیق الامین همون طوری که یوسف صدیق امین یه دفعه شد تو خانواده تو آغوش پدر یادده برادر دیگه داشت دورهم هم بودن میگفتن میخند دیدن زندگیشون یه دفعه تو چا افتاد اسیرش بندش عنوان بنده تو بازار مصر فروختن تو عزیز مصر غذایایی پیش اومد زندانی شد مدتها و همه اینا به هم ریخت یه دفعه همونطوری که جناب ایوب این شبا گفتم همه چیزاش به هم ریخت میگه کما این که برای حضرت یوسف بود لمیزرور حریته انش تو و قعرا و اسرا خیلی ظریف بعدیش دقت کنید هیچ زرر به آزادی و حریتش نمیزند اگر به عزت یوسف نگذشت اگر چه شد اگرچه از خانوادهش دور شد اگرچه چه مقهور شد ولم تزرره و لم تضرره ظلمت الجب وحش و وحشته اون تاریکی ته چا هیچ تاثیری براش ایجاد نکرد وحشت براش ایجاد نکرد و ما نالهو ان من الله علی فجعل الجبار العاتی له عبدا بعد از کان مالکن خیلی عجیبه وقتی این آزادگیشو در مقابل پروردگار کرد خداوند او را به درجه‌ای رسون که از این عبد تو چا افتاده حسیر تو بازار فروخته عزیز مصرش کرد این نمونه است نسبت به عالم واقع که آخرته این مهمه این یک نمونه است نسبت به عالم واقع که آخرته لذا دنیا نسبت به آخرت که چیزی نیست اینه تو دنیاش نشون میدن و وقت اون عالم واقعی که در اون عالم واقعی باید عرضش های وجودی انسان جلوه کنه در اثر صبر جلوه میکنه فرسله و رحمه به امتان و کذلک الصبر و خیرن. لذا خدا او رو برگردون امت براش قرار داد این نتایج رو براش حاصل کرد صبر این خیرات را همراه خواهد آورد پس یکی از ارزش ها که در عالم مطرح است برای تعالی صبره صبرم به معنای که بتوانیم با تمرین و ممارست این قدرت حبس نفس را در برابر تمایلات ناشایسته ده گونه ای داشته باشیم که اجتناب کنیم در برابر ارزشها ها و عوامر الهی ایجاد قدرت کنیم که برین جلو صبر کربلاییان در هر دو جهت در قوجش بود در جهت اونچه الان کشتن راحت میره میدون شب آشورا بود شنیدید همه دیگه اینا تاریخ که الحمدلله زیاد برای ماها گفته شده شب آشورا حبیب ابن مظاهر دیدن شوخی میکنه جوک میگه به قول امروز یا میخنده مسلم ظاهرا مسلمه, مسلمه اوسجه گفت حبیب شما اهل شوخی نبودی پیرمرد سن هم 80 و خورده ساله نزدیک 90 سال حبیب ابن مظاهر و بعضی از اینا در اثر کوهولتی ابروها به گونه ای بود که با دستمال ابروهاشون بسته بودن بالا که بتونن ببینن و بیان میدان ولی مثل یک جوان میقریدن و میومدان میدان دل جوان اون چنان به چرا اینقدر شوخی میکنی میخندی مزاح میکنی گفت میدونی من اهل شوخی و جوک نبودم تو هم میدونی ولی از بس شب خوشحالم از بس امشب خوشحالم این خوشحالی نمیذاره تو پوستم بگنجم مثل همینجور دارم با دیدید بعضیا که خیلی سرور بهشون دست میده بالاخره سر به سر در محدوده درست شرعی با دیگران میخواد شوخی کنه جوکی بگه یه جمله بگه از بس مسرورم چرا چون فهمید الحمدلله تونستیم بیستیم. و مطمئن نیم هم که فردا میستادیم این عاقبت به خیریری که میخوام ببینم حالا از کردم منو ببخشید من کجا واقعا اون حرفا کجا این مثالا کجا چیکار کنم مجبوریم تو این عالم گاهی با این مثالات ساده تقریبه به ذهن پیش بگیریم خودم خجالت میکشم با این مثالها الان مثلا یک شاگرد ممتاز انتخاب شده در میان جمع در یک کشور یکی رو الان جدا کردن اینو میبرن در یک مثلا فرض کنید مسابقه یه مثل بحثای المپیاد و چی و چیه جهانی تو یک جمعی با دلشوره داره مسترب هست خیلی مهمه سر در این هست سرنوشتاز چنین چنانه وقتی سوالاتو میدارن جلوش همه رو نگاه میکنه میبینه نه کاری کرده که الان جوابش براش شد با یک آرامیشی جوابارو میده برگر میده میاد بیرون داره حرفش میگه و میخنده و شوخی میکنه و دلش میخواد یه آشنایی پیدا کنه باش کشتی بگیره بالا پایینش به چه خبر خیلی عالی بود اینا تو این اموره در امور عمر جوان چه کردی پیره مرد چه کردی؟ خانم چه کردی؟ این چند ساله ای عمر میگذره تونستی در مقابل شکم و شهوت و مقام و دنیا و تعلقات بیشتی یا نه؟ اگه نه تو این دهی محرم برو بزن تو سر خودت برای امام حسین لازم نیست تو سینه خودت بزنی اول تو سر خودت بزن انقدر ضعیف انقدر بیچاره در مقابل این تم... تمایلات این مقدار قدرت ایستادگی نداری دو در مقابل اوامر الهی چقدر قدرت دارید در چه امر خدا تو که برای نماز خدا سستی تو که برای روزه خدا سستی تو که برای حجاب الهی سستی تو که برای امر معروف و نهی منکر قدرت ایستادگی نداری این مقدار در درونت ارزش های والای انسانی اون وقت میایم روز عاشورا برای اصحاب ابی عبدالله میگیم با اون مقام داریم میگه بازم واسی صبرن بن الکرام درس بگیریم صبور باشیم این صبر تو این مراحل شروع تا مراحل بالاتر بتونیم بیشتیم بیاییم با امام حسین عهد ببندیم بیاییم انشاء شب شبه قاسم ابن الهسنه با این 13 ساله امام حسین عهد ببندیم به خدا قسم عزیزان من که لیاقت ندارم ورز کنم به خدا رو دلسوزی میگم نمی ارزه این عمر 50 60 70 سال که ما زندگیمون زندگی باشه که خدا پیغمبر نپسندن اون روزی به خودمون میایم که دیگه وقتها تموم شد کاری نمیتونیم بکنیم این قران در نظر بگیرید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعل ا اعمل صالحا فيما تركت وقال كلا كلمه هو قائلها ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون اون وقت این اصحاب چه اصحابی بودن؟ شب عاشورا صبر رو ببینید تازه با این مقام صبح امام حسین می‌فرماز خبران بن الکرام شب عاشورا امام علیه السلام فرمود این مردم با من کار دارن هر کی می‌خواد داره بره با شما کاری ندارن برید خب یا ادر که صبرش نداشتن رفتن تو پرانتز بگم من وقتی در مقابل گناهان صبرش ندارم گناه میکنم اگه شب آشورا بودم جز اونایی هستم که رفتم یا نه خب من در مقابل گناه صبر ندارم خب اونجا گفت یکی از اولیاء الله از بزرگان وقتی زیارت آشوررا میخون الله الان اول ظالم من زل تا و آخرت تا به الله و ال لازاه گریه میکرد. میگفتن چرا می میگفت نکنه خودم جزش باشه چون و آخرت تا بهن و اونایی که بعدا اومدن این کارو کردن خب شما بینی و بین اللهی به من نه به خودتون ررجدان شب رفید خونه تنها اگه کربلا بودی دلت میخواست به امام حسین کمک کنی در نری یا دلت نمیخوااست. به من نگو عرض کردم الان فکرشو بکن اونایی که در رفتن ضرر کردن یا نه اونایی که تحمل کردن مندن بردن یا نبردن اگر میگی قیامت نیست خبری اون عالم نیست ارزشهای ما یا بحث کنیم پس بحث دلائل عقلی و نقلی و غیره و غیره اینا روی که قبول داری الحمدلله پس الان نمیگی خوشا به حال اونایی که گول نخوردن موندن خب عزیز من شما بمون ولی مندن شما به چیه؟ تو این به گوناگون زندگی تحمل در برابر امیال و نفسانیات داشته باش عمل کن از گناهانم هم اجتناب کن لذا ابی عبدالله فرمود برید اینا با من کار دارن اونایی که تحمل نداشتن رفتن ولی اونایی که مندن سهیر ابن قیل پاشد مسلم ابن اوسجا پاشد حالا وجود ابلفض و علی اکبر و, و اینا کی جدا ببینید چی گفت. نه این حرف بزنه چون روز آشورا نشون داد گفت حسین جان یکیش گفت هفتاد بار یکی گفت هزار بار عنوان کسرت حسین جان اگه هزار بار منو بکشن زنده کنن دوباره بکشن بازم زنده کنن به خدا از تو جدا نمیشم و اینکه که یه بار که بیشتر نمیکشن کشن موت لاغن تره. این استادگی نباید در کائنات اصحاب عبیبدالله بدرخشه و خدا آقا به فرماد لا اصحابه که اصحابی هزار بار منو بکشن با زنده کنن من دست بر نمیدارم باید کجا برم گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر این دل کجا برم و این مهر برکه کجا برم من باید این تازه تا اون لحظات آخر هم که تمام وجودشون رو برای حمایت و دفاعی از امامشون به بردن تازه آخرین لحظات هم نگرانیشون برای امامشون بود که تنها و غریب و مظلوم باقی مونده باز برای او عشق میریختن و متحصر بودن یه صحنه ای رو شب آشورا پیش اومده سریع بگم بریم امشب شب قاسم ابن الحسنه من از جوانترها امیدوارم ارتباطی برقرار کنن که انشاءالله از توفیل ارتباط اونها ماهام برخوردار بشیم انشاءالله خب بکنید شب آشورا. یه وقت حضرت زینب سلام علیه ها اومد امام حسین رو صدا زد یه گوشه با هم به گفت شنود برخی از اصحاب شنیدن که من جمله از این گفته شنود این بود حضرت زینب به امام حسین ارز کرد داداش ای اصحاب خودتو مطمئنی که همینا مثلا به شما خیانت نکنن حضرت فرمودند که بله اینا جزء خصیصین هم نگرون نباش جناب حبید ابن مظاهر رو مسلم ابن اوسجب و چند تا از اینا که اینا شنیدن سخت به گریه افتادن اومدن گفتن همه اصحابو جمع کنیم از امام حسین بخواییم که اجازه بده زینب سلام الله ها در یه خیمه قرار بگیره جلو اون خیمه ما میخوایم یه منوبر نظامی به قول امروزی ها نشون بدیم در اونجا شروع کردن نوعی مبارزه نشون دادن و منور دادن و یک صدا پریاد زدن دختر علی به باباد علی قسم ما تا آخرین قطره خونمون فردا برای حسین خواهیم جنگید و تا یکی از ماها زنده است نمیداریم به حسین آسیبی برسه همینم هم بود یا نه؟ تا ها زنده بود نگذشتن به ابی عبدالله هیچ کس نمیذاشت تا اون آخرین لحظات که دیگه شش ماه هم وقتی از دنیا رفت و شهید شد نوبت خود علی عبد شد یکی از ایشون جناب قاسم ابن الحسنه صبح خوندم روزش رو خب روزی که نمیخوام جل کنم تغییر بدم همونو ولی با یه درسایی که میخوام بیاموزم اجازه بدید براتون بگم قاسم ابن الحسن علیه ما سلام 13 سالش از روز شهادت امام مجتبی تا کربلا 11 سال فاصله بوده یعنی وقتی جناب قاسم پدرشو از دست داده دو ساله بوده اصولا امو وقتی برادرزادش رو یتیم ببینه خب محبت میکنه علاقه داره نوازش میکنه تو آغوش میگیره به خصوص که بچه یتیم احساس بیپدری نکنه ما که در اسلام دستور داریم جلو بچه یتیم بچه خودتونو بغل نکنید نوازش نکنید نکنه اون بچه دلش به درد بیاد که او بابا داره نوازشش میکنه. وقت امام حسین در این رعایت چه کار میکنه؟ توجه داری؟ لذا اصلا قاسم امام حسین مثل بابای خودش دیده. این جور دلبسته، شیفته، علاقه من امام حسینم عجیب به جناب قاسم علاقه داره. تا حالا شده روز عاشورا. ظاهرا مادر ایشون هم جز است که تو کاروان هست. اومد پیش مادر. مادر گفت: "سرم، نمیخوای بری از عمود حمایت کنی؟" ببینید صبر و استقامت و استراتیژی رو عمود خیلی تنهاست پدرتم سفارش عمو رو همیشه میکرد اون لحظه جان دادن امام مجتبی هم اینو شنیدن که برای کربلا گریه میکرد که بقیه‌ام دارم اومد توی خیمه عمو امام حسین تا چشمش و عمو, عمو استاد مقاتل این رو داره امام حسین گریه کرد قاسم گریه کرد قاسم گریه کرد امام حسین گریه کرد بعد دو تای هم دیگر رو در بغل گرفت انقدر در آغوش هم گریشتن که هر دو قش کردن از شدت گریه که در عبارات مقتلی این عبارات رو داره عرض میکنم بعد از اینکه بههوش اومدن گفتم امو جان اومدم اجازه میدی من برم میدان امام حسین علیه السلام اول طبق روال رو عادی حسن جانم قاسم جانم شما یادگار حسن منی برو پیش مادر گفتم مادرم گفته و وصیت بابامه که میخوام از شما حمایت بکنم امام سلام نمیخواد از توفیق بازش بداره میگه قاسم جانم پس لباس رزمتو بپوش لباس و زرهی که به بدن سیزده ساله تطابق کنه نبود چون از نظر جسه لباسی پوشیده بود که تو میدان جنگ کاملا نشون داده میشد که این بدن نسبت به این زره نسبت به این سفر نسبت به این آه هنوز از نظر سنی ضعیفتره اومد میدان جنگ کرد رجز خورد رجزهای کزایی که فرهنگ خودش نشون داد اونها هجوم یک خیانتی که تو کربلا می‌کردند سبک جنگ این بود که مبارزه تن به تن بود یکی از این میومد، یکی از اونور این اگر اون یکی رو می‌کشد یکی دیگه می اومد تا اینکه بالاخره طرفین کشته بشن جناب قاسم سیزده ساله جنگ تن به تن با اون رو رها کردن گروهی به هجوم آوردند یعنی حتی آن روال جنگی که تو عرب رسم بود این هم کنار گذاشتن یکی با شمشیر اومد یکی با خنجر اومد یکی با نیزه اومد ای سیزده ساله رو یه وقت به زمین که افتاد صدای رو بلند کرد امو جان من هم رفتم دعبه امام حسین بود سبک آشورا ین بود هر شهیدی که به زمین میافتاد امام حسین دوان دوان می اومد سرش به آغوش گرفت اگر از دنیا نرفته بود نوازشش میکرد در اون حال جان میداد اگر از دنیا رفته بود در آغوش میگرفت میآورد تو خیمه دارالحرب این ابدان متهر رو کنار هم میگذاشت صدای قاسم که بلند شد در کتاب مقاتل داره امام حسین مثل باز شکاری که برای سید میخواد بره با این سرعت به طرف لشکر اومد دید لشکر دور قاسم رو گرفتن مجبور شد با اونا به تا اونها رو از بدن قاسم دور کنه در این جنگیدن سواره بود پیاده بود اسمی اومد آدم می اومدن. یه وقت صدای قاسم ابن الحسن بلند شد اموجان دست از جنگ بردار استخانام زیر سم از و ها خورد شد و همین دار به هر زحمتی امام حسین علیه السلام اون لشگریان رو دور کرد دید اما قاسم لحظات آخر عمرش رو داره تیمی میکنه نشد سر رو به دامن گرفت، اما در اثر شدت جراحات و خورد شدن استخونه ها دردی که بر بدنش غلبه کرده بود به گونه ای بود که داره پاشنه پاش روی زمین می کشی و این جمله رو امام, مج... امام حسین فرموده در مقاتل داره امو جان. چقدر سخت برای من امویی که تو پریاد بزنی کمک بخوای ولی من نتونم کمکت بکنم بدین کیفیت غاسم هم به شهادت رسید امام حسین قاسم رو در بغل گرفت آورد تو خیمه دارالحرب گذاشت حالا چون فرزند امام مجتبی رو و عرض ادب کردیم یه پسر دیگه از امام مجتبی اونم عرض کنم اون جناب عبدالله ابن حسنه او یازده سالشه اصلا پدر رو ندیده سن نشیگاب نمیکرد همون ابتدای تولدش امام مجتباه شهید شده لذا از اول تو آغوش امام حسن بوده حالا روز آشوراست لحظه حساسی که عبی عبدالله تو گودال قتلگاه افتاده بود یکی با شمشیر میامد یکی با خنجر میامد این بچه توان نیاورد دامن خیمه رو بالا زد نگاه کرد دید اموش افتاده. دوان جوان از خیمه دوید بیاد بیرون امام حسین از تو گودال قتلگاه میدید فریاد زد زینبم خواهرم بچه را بگیر ولی زینب تا خواست بچه رو بگیره بچه از دستش باش در را. رسید تو گودال قتلگاه خودشو انداخ رو بدن امو همین جوری که تو آغوش امو بود یه میشم شمشیر فرود آورد این دستشو بلند کرد که میخوای خای رو بکشی این دست کودک 11 ساله در اثر این شمشیر غد شد به پوستش آویزان شد صدای نالش بلند امام حسین او رو رو سینه چسبند رو سینه امام حسین جان داد و فرمود سبور باش الان به ملاقات پدرت و جدت خواهی رو الله علیک یا مولای یا عباد